رنگ کوهنیک و طبیعتگرای این جشنها بازمانده قدمت اصیل و سرزنده است که طبیعت جاندار را به درون جامعه مدرن شهری میکشاند و آشتی و ارتباطی در آن هست که همواره پسندیده و ستودن است. در این آشتی و ارتباط است که فرهنگ ایرانی و پگام درونی و ذاتی همه ادیان الهی بازگوی و بازنمون می گردد. تفاهم و گفتگو برای دستیابی به بهترین راستی و این میسر نمی شود مگر با یاوری اندیشه نیک که نماد آن بهمن امشاسپند است و او را نیرومندی اینکه سپاه ایزدان و نیز آن آزادگان چون آشتی کنند و بیافزایند به سبب بهمن است که به میان ایشان رود بندهش بهار 1376 صفحه 147 و از اوست که شهری بر ملکوت خداوند خلق می گردد و درست منشی در دل و زمیر مردمان نقش میبندد. پیامی که در نهایت در این جشنها پدیدار می بنیان آین زرتشتی را نمایان می سازد. در این پیام می که گرچه میآید که اول خیش و پس درویش، اما سپس به دنبال آن خواستاری شادمانی برای همگان تجلی می گیرد. در این جستجوی شادکامی است که منتجه پیام گاهانی را می توان یافت که منطق را با شوق دیگر خواهی همراه می گرداند و حکمت آن را زرتشت پیامبر با شکو آموزانده و آن دو سخن است به سبک و شیبه خواست زرتشتی نخست اینکه به بیداد به پیکار کسان مشوید. دیگر اینکه اگر با شما به بیداد می داد پیش آورید گذیده های زادس بهار 1376 صفحه 258 عدالت و دادگری و قد ورف به مقابله خردمندانه با بیدادگری بنیاد استوار و متین است در همه فرمان های مقدس آسمانی صفحه 117 مآخز آموزگار جاله 1348 ادبیات زردشتی به زبان فارسی مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران سال 17 شماره های 1 و 2 صفحات 172 تا 179 آموزگار جاله تفضلی احمد 1375 اسطوره زندگی زردشت تهران چشمه بابول آویشن عبالغاسمی محسن 1374 تاریخ زبان فارسی چاپ دوم تهران سبت ارشاد فرهنگ 1379 مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند چاپ دوم تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آفائی عبدالمجید 1356 فرمان کورش بزرگ تهران فرهنگستان ادب و هنر ایران شماره 9 اشیدری جهانگیر 1355 برابر با 2535 تاریخ پهلوی و زرتشتیان تهران انتشارات ماهنامه حخت افشار، ایرچ، 1348 یادگارهای یزد معرفی ابنیه تاریخی و آثار باستانی جلد اول، خاک یزد تهران، سلسل انتشارات انجامن آثار ملی شماره 68 امینی، تورج، 1380 اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران 1338 تا 1285 شمسی تهران، سازمان اسناد ملی ایران بررسی دست نویسته میم، بوه داستان گرشاس، تحمورس و جمشید، گلشاق و متنهای دیگر 1378 کتایون مزداپور آوانویسی و ترجمه از متن پهلوی تهران آگه بندهش 1369 ترجمه مرداد بهار تهران توس بندهش ایرانی چاپ پاکسی از روی نسخه شماره یکه تحمورس دینشا 1348. به کوشش با پیشگفتار ماهیار نوابی تهران بنیاد فرهنگ ایران شماره ی 88. زبانشناسی ایرانی شماره 4. بویس میری 1375 تاریخ کیش زرتوشت جلد دوم هخامنشیان ترجمه همایون سنعتی زاده تهران توس. 1377 چکیده تاریخ کش زرتشت ترجمه حمایون همایون سنعتی زاده تهران صفی علی بهار مهرداد 1376 پژوهشی در اساتیر ایران پاره نخست و پاره دوم تهران آگه چاپ دوم 1376 ب. سخنی چند درباره شاهنامه در جستاری چند در فرهنگ ایران تهران فکر روز 1377 از اسطوره تا تاریخ تهران چشمه پورداوود ابراهیم 1926 ایران شاه تاریخچه مهاجرت زرتشتیان به هندوستان تفضلی احمد 1370 کرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت در دوره ساسانی در یکی قطر باران جشنامه عباس زریاب خویی به کوشش احمد تفزلی صفحات 721 تا 737 تهران تفزلی احمد 1376 تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام به کوشش جاله آموزگار تهران سخن پرتی کارلو 1381 قصه زرتشتیان هندوستان و قصه سنجان یاد بر تاریخ پارسیان ترجمه زهرا یا نیلوفر باستی در سروش پیر مغان یاد نامه جمشید سروشیان به کوشش کتایون مزداپور تهران سریا صفحات 742 تا 754 خورد اوستا، 1310 تفسیر و ترجمه ابراهیم پور داوود از سلسله انتشارات انجمن زرتشتیان بمبئی و انجمن ایران لیگ بمبئی از نفقه پشوتن مارکر داندامایوف میم الف محمد علی 1372 ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی ترجمه روحی ارباب تهران انتشارات علمی و فرهنگی رجبنیا مسعود 1351 زندگی نامه انکتیل دوپران یاد نامه دوپران نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان، سال 11، هم شماره دوم اسفند 1351، صفحات 3 تا 18. رستم و تواریخ 1348، محمد هاشم عاصف، رستم حکما به کوشش محمد مشیری، تهران، چاپ تابون. روایت پهلوی، ترجمه 1367، ترجمه محشید میرفخرویی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. زرین کوب عبدالحسین 1330 دو قرن سکوت سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان تهران سروشیان جمشید 1335 فرهنگ بهدینان به کوشش منوچهر ستوده با مقدمه ابراهیم پور تهران فرهنگ ایران زمین نشریه شماره سه شاهروخ کیخسرو 1355 برابر با 2535 یادداشت های کیخسرو و شاهروخ به کوشش جهانگیر اشیدری تهران چاپ پرچم شاهنامه فردوسی 1238 یزدگردی برابر با 1331 قمری به کوشش آموزنده ابن شیرمرد بمبئی شایست ناشایست ترجمه 1369 آوانویسی و ترجمه کتایون مزداپور تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی شمیم علی اصغر 1342 ایران در دوره سلطنت قاجار قرن 13 و نیمه اول قرن 14 هجری قمری تهران ابن سینا شاه مردان، رشید، 1336 یزدگردی، پرستشگاه های زرتشتیان، بمبی، سازمان جوانان زرتشتی بمبی، نشریه شماره 8. کریستنسن آرتور، 1370، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، چاپ هفتم، تهران دنیای کتاب کلیفورد، باسورس، ادموند، 1370، تاریخ سیستان، ترجمه حسن انوشه، تهران امیرکبیر بیرشمن رومن 1368 ایران از آغاز تا اسلام ترجمه محمد معین چاپ هفتم تهران علمی و فرهنگی متنهای پهلوی بیتاریخ، گردآورده دستور جاماسپ اسانا جلد اول و دوم چاپ دوم با مقدمه بهرام گور انکل ساریا و دیباچه ماهیار نوابی تهران بنیاد فرهنگ ایران شماره 112 مجید زاده یوسف 1370 تاریخ و تمدن ایلام تهران مرکز نشر دانشگاهی مزداپور کتايون 1371 نقش ایران شناسی در شناخت پیبند ادب کهن ایران و ادب فارسی دری در مجموعه مقالات انجمن بررسی مسائل ایران شناسی به کوشش علی موسوی گرمارودی چاپ دوم صفحات 333 تا 354 تهران وزارت امور خارجه 1374 واجه نامه گویش بهدینان شهر یزد فارسی به گویش همراه با مثال جلد اول، الف تا په، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1381 نوی آفته های کهانسال، جهان کتاب، شماره های 151 و 152، سال هفتم، شماره های 7 و 8، مرداد ماه، صفحه 10 تا 12 معایری هایده 1381 مقان در تاریخ باستان تهران پژوهشگاه علوم امسانی و مطالعات فرهنگی ویندنگرن گئو 1372 هفت، دینهای ایرانی ترجمه منوچهر فرهنگ تهران آگاهان ایده بیس فرد 1357 برابر با 2537 گزارش ابراهیم پور چاپ دوم به کوشش بهرام فرهبوشی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. هنینگ والتر برونو 1365، زرتشت سیاستمدار یا جادوگر، ترجمه کامران فانی، با مقدمه فتوالله مجتبایی، تهران، نشر پرواز. هینز، جان، 1375، شناخت اساتیر ایران، ترجمه جاله آموزگار، احمد تفضلی، تهران، چشمه، بابل آبیشن یسنا 2536 برابر با 1356، دو جلد، گزارش ابراهیم پورداود، تهران، دانشگاه تهران یشتها 1347، دو جلد، گزارش ابراهیم پورداود، تهران، تهوری پایان کتاب زرتشتیان از ایران چه می‌دانم مؤلف کتایون مزداپور